فصل دهم ده بازپا شد و از پشت شیشه سرپله تو خیابان ساحلی جلو بیرق کوتی را نگاه کرد. دو تا چراغ با شیشه های سرخ هر یک به قد یک بچه چهار پنج ساله رو فرمن پرچم انگلیس نشسته بودند. خیابان تاریک بود نباید از این راه برم از کوچه بغل کوتی میرم دماغ گنسول سپاهی هندی کشید میده. کوچه بغره کوتی باید خیلی خلوت باشه رائشم میانباره چقدر شهر خاموشه مثل اینکه همه مردن صدای آهسته آساتور از پایین پله ها تو گوشش خورد بیا پایین کسی نیست محمد توپنگش را برداشت و با احتیاط از لای زرت و تو سرپله خودش را بیرون کشید و از پله پایین رفت آساتور تو راه را منتظرش بود با هم رفتن تو اتاق اتاق شست و رفته کوچکی بود که میز و صندلی توش چیده بودند اسطور گفت سایر بشی خیلی آرام بود و سرش خم بود و رو زمین را نگاه می کرد. مثل اینکه کمردرد کمر داشت که نداشت سفید و کلفت و صورت سرخی داشت بعد گفت داره کم کم کوچه ها خلوت میشه، اما هنوز آدم تو کوچه هست اعلام کردن از ساعت دو دیگه کسی تو کوچه نباشه هنوز نیم ساعتی مونده ارباب راستی خیلی باید ببخشین که از باب زحمتتون شدم عیبی نداره من میدونم که خیلی بد ظلم کردن چاره چیه؟ اما نمیدونی که اینا چه کارا سر من اووردن من به اینا گفتم روزی دو قرون به من بدن تا طلبم پاک بشه کاشکی به زبون خوش میگفتن نه مسخرم میکردن حالا میخوای چکار کنی؟ تو که دیگه نمیتونی اینجا زندگی کنی هر جوری باشه میگیرنت نه آقا میرم دیگه پشت سرم هم نگاه نمیکنم میرم کویت یا بحرین اگه باادخل لازم بشه زن و بچات کاری داشتن من هر از دست بر بیاد میکنم. بزانت سفارش کن که اگه کاری داشت بیاد پیش من خدا عمرت بده اگه خدا بخواد میخوام زن و بچه‌م با خودم ببرم اگه بام به دواس برسه میدونیم فرار کنیم یه بلم خوبی دارم که میتونم باش برم اما آقا خدا سرشاهده که هیچ وقت من دلم نمیخواست از این سرزمین برم آساطور یک استکان چای آورد بگذارد جلوی محمد محمد رو زمین چهار چهارزانو نشسته بود و تفنگش بغل دستش بود محمد نیمه را استکان چای را از دست آساطور گرفت و نگذاشت پیرمرد خم بشود چای به دهنش خیلی مزه کرد استکان کوچک بود و به زودی چای را بلعید از اینجا تا دواز چطور میری؟ همه جا چی گذاشتن؟ حالا نمیدونم. وقتی که تو کوچه رسیدم ببینم چی پیش میاد. راستی گمون کمون نمیکنم بتونم بی سر و صدا برم. نمیدونم چه پیش میاد. اگه از راهه بتونی بی سر و صدا دربری شاید امیدی باشه. هر خدا خواسته همون میشه. دیگه دلم نمیخواد کسی کشته بشه. اما اگه بخوان جلوم بگیرن تا فشنگ آخرین باشون میچنگم. بهتره که نهشهم دستشون بیفته تا زندم میخوای چند روزی هم اینجا بمون تا آبا از آسیاب بیفته اما چشمم از این پسره آب نمیخوره شاید بشه یه کارش کرد ازاش باغونه میگیرم چند روزی بیرونش میکنم تا بعد که تو رفتی باز میارمش. نه خدا عزتت بده به شهرو گفتم کارم همش یه روز طول میکشه امشو منتظرمه هر جوری شده باید امشو كار سری بشه هر جور خودت میخوای دیگر حرفی زده نشد پیرمرد میان اتاق راه میرفت و محمد گنده و شرم زده رو زمین نشسته بود ازطور آهسته لای در کوچه را باز کرد و تو کوچه سرک کشید کوچه خلوت بود ماهتاب رنگ پریده زردنبوی تو کوچه خوابیده بود تای کوچه سایه سه گوش خانه افتاده بود رو زمین و رو دیوار و تو آن سیاهی آدمیزادی سایه را تاریک تر کرده بود کوچه کوتاه بود و آساتور سیاهی آن آدم را می دید اما چه چجور آدمی است. در کوچه را با احتیاط بست و به محمد که پشت سرش رو پله ایستاده بود گفت تا کوچه یکی با نمیدونم نمی دونم کیه لاباد توفنگ چون که دیگه کسی جرأت نمی کنه حالا تو کوچه سفید بشه اما من خوب چشام نمی بینه تو بیا یواشکی نگاه کن ببین کیه اما موازده باش سر و از ازت در نیاد اگه بفهمان تو اینجا پنون شدی کار من خودت زاره محمد لایه در را باز کرد تو کوچه سرک کشید و سر تا ته آن را ورنداز کرد سیاهی دیگر آنجا نبود کوچه را محمد خوب می شناخت کوچه شکل بازو بود ته کوچه همانجا که آن سایه سگوش افتاده بود پیچی می خورد و یک راست می رفت کنار دریا تمام نیرویش تو چشمانش جمع شده بود و خیره تو سایه سگوش را میپایید تو سایه کسی نبود اما ناگهان سایه تاریک تر شد و یکی تو تاریکی جنبید و بعد آمد سوک دیواری ایستاد. محمد خوب دید که یک تو چیست و برق چرکین لوله زاج خورده مثل یک رشته نخ تو تاریکی به چشمش خورد آدم کدائی بود و مثل تنگ سیرها داشت محمد در را بست آساتور یک بله بالاتر از او ایستاده بود اما هنوز محمد از او بلندتر بود محمد دستش را گذاشت رو شانه آساتور رو گفت «ارباب خدا طول عمرت بده من دیگه میرم تو زود در به من دوبرو بالا چطور دیدی ندیدی؟ دیگه دیدار به قیومت؟ خیلی به من بزرگی کردی؟ دلم میخواست دستم میرسید تلافی کنم خاطر جمع باشی؟ اگه شارقم را بزنن نمیگم اینجا پنون شده بودم. بعد اندام درشتش را از یک لنگه دری که باز شده بود بیرون کشید و در را آهسته بست و توند از آستانه در به کنار کوچه پرید دیگر سیاهی آنجا نبود محمد با پرشهای بلند خودش را به کمر کشه کوچه کوچه در آنجا درگاهی کوچکی بود که دو پله از کف کوچه میخورد میرفت بالا دم در یک خانه محمد رفت بالا تو درگاهی ایستاد و پشتش را آهسته به در خانه چسباند. نگاهش رو تو بود. حالا دیگر خوب میتوانست توانست را ببیند. درگاهی تا جایی که تو ایستاده بود چهار متر بیشتر دور نبود. محمد دلش میخواست می توانست یک لحظه برود تو سه گوش دیوار همان جایی که تو بود بیستد و کوچه درازی را که به طرف دریا میرفت نگاه کند. پیش خودش فکر کرد: این تفنگچی آنجا تنهاست؟ گمون نمیکنم بتونن این نزیکی ها بازم یه توفنگچی دیگه بذارن اما حتما کنار دریا باید بازم توفنگچی باشه راه خوبی نیست اما بازم از راهی دیگه بهتره توفنگچی دوباره برگشت سوک دیوار دیوار روته کوچه را ورانداز کرد بعد دستش تو جیبش رفت و سیگاری درآورد و کبریت کشید و سیگار را روشن کرد محمد او را میپایید خیلی جوونه بیست و یکی دو سال بیشتر نداره. خیال میکردم تنگ‌سیره اما تنگ‌سیر نیست. این اینو از کجا گرفتن آوردن تو کردن. این بَدبخت تیر بلد نیست خالی کنه. باید یک کاری کنم که سر و صدای تیر بلند نشه. هر چی باشه بالاخره آدم و اون سر و صدا را بندازه. من حالا باید هوای صدای گربه هم داشته باشم تا چرسد با آدم. باز تفنگی راه افتاد. این دفعه چند قدم آمد تو کچه که محمد تو کمر کشش تو درگاهی ایستاده بود. یکی دو قدم که آمدی ایستاد. با محمد فاصله زیادی نداشت. محمد صدای نفسش را میشنید. پوکه سیگار صورتش را روشن می کرد. یک چشم محمد از سوک دیوار او را می پایید. توفنگ لحظه ای ایستاد. تفنگش را همایل کرده بود و قطارش پر از فشنگ بود. میان کوچه ایستاده بود و حالا به ته کوچه‌ای که خانه آساتور آنجا بود نگاه میکرد گوزاله کجا نگاه میکنی؟ اونجا که کسی نیست؟ من دو قدم ایت بایست دادم، بیا جلوتر اها، یه خورده دیگه، خوب شد محمد به یک خیز خودش را روی او انداخت و هر دو روز زمین غلطیدند محمد به چابوکی با دست چپ گلویش را چسبید و بیرحمانه فشار داد سر جوانک رو زمین بود و محمد روی او افتاده بود. میدرنگ مشت مرگباری روی شقیقه چپ جوان پایین آورد. جوان لخت شد و از بینی و گوشش خون بیرون زد. چشمانش باز بود و تو صورت محمد نگاه می کرد. لبهایش می لرزید. محمد به چابکی از روی او برخاست و او را بغل زد و آورد. رو پله درگاهی نشاند و به پله بالای و دیوار تکیهش داد. جوان بیهوش بود و خورخور خور می کرد همین جا راحت بخواب وقتی من رفتم بیدار شد. سپس تفنگ و قطار فشنگ او را از تنش کند و به خود هممایر ساخت سنگین شد و گنده شد کار از محکم کاری اب نمیکنه حالا شدم دو تا آدم آنگاه از کنار دیوار خودش را به سوک سایهدار دیوار همان جایی که قبلا تو آنجا نفس تازه می کرد رسانید اما با تعجب دید که کوشه که به طرف دریا میرففت خلوت بود بعد از گوشه دیوار راه افتاد و با احتیاط از کمرکش دیوار به طرف دریا روان شد میانان دیوار یک کوچه بود و چندتا در خانه این سووان سویان غاب شده بود. تو سیاهی دیوار راه میرفت و توفنگش مثل شاهین ترازو تو دستش راست گرفته بود و تفنگ غارتی را حمال کرده بود. به زودی ساختمان ها تمام شد و کوچه تمام شد و به میدان گشاد جلوی گنسل رسید. نور خفه چراغ برخهایی که گله به گله میدان سوسو میزدند، تو نور ماهتاب اشک می ریختند. تنها سرخی دو چراغ راهنمایی نمایی کشتی ها که تو سینه دکل پرچم کتی نشسته بودند نور ماهتاب دور دورور را به خون کشیده بودند. انتهای گوشه ساختمانی که بعدش فضای باز بود ایستاد و اطرافش را خوب نگاه کرد دوتا تفنگچی میان میدان ایستاده بودند و با هم حرف میزدند با خودش گفت باید تا زوده در برم اگر نفراتشون زیاد بشه بد میشه میتونم جفتشون رو با گله بزنم اما اگه کشت و کشتار بشه در رفت چه بهتر اما گمون نمیکنم اگه بخوام همین تو راست راست راه برم زودی میبینندم باید یه فکری کرد که گیچشون کنم خدایا به امید تو رو زمین پی سنگ گشت یک تکه سنگ اندازه یک دستنبو نگاهش را گرفت باز هم سنگ رو زمین بود ریستر و دروشتر اما همونی را که به اندازه یک دستنبو بود برداشت و با قوت تمام آن را به مسافت ده پانزده متر دورتر از توفنگچی ها پرراند. ناگه آن حراسان هر دو تفنگچی به سوی سنگ دویدند و دور و نزدیکی های جایی که سنگ به زمین خورده بود به تکاپو پرداختند. محمد با گام های کشیده و آرام به طرف میدان و یک راست به سوی کرانه دریا رفت. اول خیال می منم مثل خودشون یک توفنگچی هم. هیچ کوششی برای پنهان کردن خود نداشت. میدان گلو گشاد بود و خالی بود. دو طرف راست او بودند. یک سپایی هندی هم آن دورتر در غنسولخانه انگلیس ایستاده بود و کشیک میداد. محمد فکر کرد سپایی اجازه تیراندازی نداره از طرف او یالم راحته. از برابر توفنگکیی ها که گذشت پشتش را به دریا کرد اما هر لحظه پشت سر خود را هم می پایید. تمام وجودش چشم شده بود. کلش داغ شده بود فاصله میان خود و دریا را حس می کرد. هر دو تفنگچی او را ناگهان دیدند و به سوی او دویدند و یکی از آنها به طرف او قراول رفت محمد فوری فریاد زد "اگر از جونتون نگذشین همونجا بایستی تفنگش را به طرف آنها قراول رفته بود یکی از توفنگچی ها قدمش سوست شد تفنگچی دیگر که قراول رفته بود فریاد زد اگه تخم بواتی از جات تکون نمیخوری." اگه تکن بخوری سرخت میکنم محمد به سوی دریا پس پس میرفت به سوی آنها قراول رفته بود و همه جا را حس میکرد اما تمام هوش و حواسش پیشان دو تفنگچی بود نم شور دریا را روشانه هایش حس میکرد همان تفنگچی که به طرف محمد قراول رفته بود دوباره فریاد زد نزار من باعث خونه تو بشم اگه با ما بیایی بهت نداریم و در دم صدای یک گلوله فضای خلوت و خفه کنار ساحل را به لرزه درآورد و در پی آن تفنگچی به زمین خلتید آن تفنگچی دیگر ایستاد. توفنگش تو دستش بود. محمد فریاد زد. برگرد، بدکار ندارم. سیاهی چند تفنگچی دیگر که از تو کوچه های دوروور ساحل تو میدان سبز شده بودند، داشتن به طرف دریا میدویدند. محمد پس پس روان لب دریا رسید. دریا پر بود، ساحل دو متر از دریا بلندتر بود. محمد لب ساحل درنگ کرد. یکی از سیاهی ها فریاد زد. توفنگت بنداز. راه فراری نداری. مرد توفنگش نمی اندازه. خودت بیا بگیرش. محمد داد زد. صدای یک تیر دیگر بلند شد. بعد صدای چند تیر دیگر و محمد از پشت به دریا افتاد.